الله الله م نارا بحث مناسبت کلمات الله در تقسیم مجاری وی بود، و یه چند روزی راجع به حقیقت استصحاب به مناسبت به بریه اصول یه تعرضی شد که این شما در محل خودش تفسیرش خواهد داره نقصه ورود ما به بحث ها عبارت شیخ بود که فرموز از شک و ادالور زد محل و خالت و سابقه و مجان استصحاق به الله اگر شک در تکلیف باشه برای از شکل در مختلفون به هم با امکان احتیاط احتیاط روی با تخصیص این بین بی مناسبه که مرحوم شیف لحاظ حالت صادقه رو در استساق به کار روزه بودن یه توضیحی دادیم و از همین مراد مرحوم نایمی و شاید ایشان مرحوم استاد به این است که مراد از لحاظ در این جای احتباه یعنی مراد شیخی که در جایی که شارع مهند نست حالت سابقه و اعتبار کرده اعتبار جالی میشه به این مناسبت ما توضیح از کردیم که این حالت اعتبار مبنیست بر این تصور که استفاد خودجیه داشت از باقی بوده ولی زا نفس وجود حالت سابقه تأثیری در خودجیه نداره باید لحاظ بشه لحاظ که شد معتبر میشه اعتبار و دهاز و حجیت و او یک معناست. میخواستن بگن که مرموم شیخ نظر مبارکش این است که وجود حالت سابقه یقین یعنی به حالت سابقه به تنهایی کافی نیست برای استثاب. این مطلبی بود که در شرح عبارت شیخ داده شد و ما توضیحا از کردیم که اگر استطاب از باقا امارات باشه نص وجود حالت سابقه کافی است. چون استثاب را آن از باب اصول می دونند و تعبد می دونند نفس وجود حالت صابقه را کافی نمی دونند بلکه باید شاره لحاظ کرده باشه اعتبار یعنی تعبد بیاد در این تعبد هم جایی آمده که شارع لحاظ کرده اون حالت صابقه را اما اگر حالت صابقه را لحاظ نکنه دیگه جای استثاب نیست و من توضیحاً عرض کردم که ما در جاهایی داریم که شارعه مقدس حالت سابقه با اینکه وجود داره لحاظ نکرده ولذا استثاب اونجاها جایی نمیشه مثل مورد قادیت مثل سوق مصله مثل, مثل تجاوز مثل قادی در اینها شارعه حالت صادقه رو لحاظ نکرده ولذا استصحاب جایی نمیشه لیکن این مواردی که حالت لحاظ نشده اینها تماماً در شبهات موضوعی هستند تماماً نه این که تمام این مواردی که شاره بر خلاف استثاق خوپیم کرده مثل قاعده تجاوز قاعده یت قاعده سوق مسلم تماماً در تمام این موارد فقط در شبهات موضوعی جاری میشه ما از کردیم در بحث اصول بحث ما در شبهات خوپیمی هست نه موضوعی است در اصول اساسا، بحث ما در شواهد و حکمیه و در شباهات موضوعیه نیست که لحاظ نکرده باشه تماما در تا بله یک بحث دیگری هست و اون که اصولا شاره در شواهد و حکمیه حالت سابقه لحاظ کرده نکرده که الان بهش اشاره میتونم بعد از این پس بنابراین این چند روز که ما صحبت کردیم خلاصه نتیجه هر ما اینه که از دوستام میگفت چرا مشکل اینه که یک صحبتی تو این روز بعد آخرش اون نتیجه نهایی رو که مثلا انسان در ابتدا تصور نمی کنه نتیجه نهایی نهای نه که اینه که شی فرنده لوح ظفی الحالات و سابق جای استصحاب اون جاهایی که لم تلاحت فی الحالت و سابقه جای استصحاب نیست میکنه از بحث اصول هم خارج نه از این بحث هم این هم مکمله هست ازلطفت الاختن شرعی بحث ما در شواهد تکنی تمام اون اصول در شواهد تکنی هست قادیه قادیه سو قادیه قره, قره قادیه نمیدونم تجابه قاده اگر قادیه صحت هساس و سهتی فیر غیر غیب تمام اینها در اصول موضوعی در شبهات موضوعی هستن به شبهات حکمیه ندارن این یک مطلبسه اینجا اون رخ حالا یک مطلبسه که نمیخواستیم روزا متعرض بشین این هم یک ج... بلا در فقهه اما آخره در مناسبت اقوال استرساق اونجا آوردن این حرف رو تو قواهد فقهه یعنی قاعدتاً اختضام میکنه در فقر یا لیکن الان در حصول ما متعارف شده این رو یک علم دیگری قرار بزن دونا خواعد فقیه که از سر مرگم نایمی این طور در این جور خواعدی که در اینجا جا جاری میشه اسمشه قاعده فقریه بگذاریم ایشون یک مسئله فقیه دارن یک قاعده فقیه دارن یک مسئله حصولیه دارن درست کردیم به تأبیر ایشان قاعده فقه مسئله فقه کی میگوه خام نجس خام حرام این مسئله فقه هر وقت این عنوان کلی میره به عنوانه این میشه مسئله فقه کی سوال khoان میشه کی هلیس ده؟ فقه کی مسئله فقه... هر مسئله فقه کی این شدیل خم نجس خم حرام خم موج에 به حد د schul خرم این تمام مسئله فقهی است. مسئله اصولی هست كم به تأبیر ن خبرای خیاسی قرار بگیره که از او استنتاج حکم شرعی فرعی کلی بشه حکم شرعی فرعی کلی مثل این که خبر واحد حجته مثلا میگیم خبر سقه حجه. میگیم خبر سقه قائم شد در این که خبر سقهی داریم که لحم هرمند حرامه و خبر سقه حجه پس لحم حرام حرامه هرچی خبرای قرار بگیره در یک خیاسی به ترگیر ایشان که نتیجه اون قیاس یک حکم شرعی باشه در مقابل غیر شرعی مثل فیزیک و شیمی فرعی باشه در مقابل اصولی اصول عقاید اصول فرق. در مقابل اصول احادیس و کلی باشه موردی نباشه که اینکه نتیجه بگیره خراب بشه در قاعده فقهی از این جهت شبیه مسئله اصولی است این همین از هم کردن تکرار میکنن چون دیگه از مبانی ایشانه آشنا شده. هر هر ای که نتیجهش از کبرای قیاس استنتاجی یک حکم شرعی فرعی جوزی قرار بگیره این فرقش هم این سر کلمه کلی و جوزیه مثلا میگیم من در رکوع در سجوز شک در رکوع کردم و هر کسی که بعد از تجاوز از محل شکر بکنه و اعتنال نکنه پس من اعتنال نکنم ببین؟ من اعتنال شکرم نکنم این موردی، درست که گوشتن قاعده فقیم سقایت تجاوز و جزو قواعده فقیم این رجل اینجا وقتی نقطه اساسی توی استثحاب چیه؟ نقطه اساسی در باب استثحاب در شباهات حکمیه یکیش این است که حضرات اخباری ها دارن و اون این که اصولا استثحاب در شباهات اخبار حکمی جاری میشه لیه این صراف لعدلله ای که بیا توی شباه حکمیه استصاب جایی بخواه نداریم زباقه را عدله این نیست تمام این عدلهی که در استصابه فهم نداری کن تعالی یقین موضوعه این شبه نیست این شبه موضوعی هست ولی زلکه هم تن قدر یقینه بشه ولی تن قدر یقینه بشه لذا یک شبه اینه یک شبه هم استاد دارن رضوان الله تعالی علیه که تقریبا در ریشه و در کلمات مرحوم محقق نراکیست این رو حالا من امروز چون این بحث ها زیاد تکرار میشه این رو یک تقریب واضحی براتون بکنم چون بعضی علمه ها در اینجا وجود داره تا روشن بشه انشاءالله مطلب چی خلاصه کلام استاد این است که ما عدلی ها مانعی نداره که شامل شواهد و حکمی هم بشه باید در خصوص شواهد و حکمی معارضه در غیرش معارض نیست این تمام نقطه این هم این اگ کسان که مخالقه با اصدادن همین جان مخالقه دیشون ایشون میفهمن در شباهات و حکمیه کلیه دائما معارضه اما در شباهات موضوعیه معارض نیست حالا توضیح مطلب که خیلی روشن بشه تعارض در شباهات و حکمیه به لحاظت استثابه در جمع یعنی استثابه اون لحاظت سابقه است اما در شباهات و حکمیه و موضوعیه دو تا حالت سابقه هست نه یکی در شبه هاست موضوعیه این حل میشه مشکل در شواهد ها حل نمیشه. این نمیشه البته شاید به این تقلیبی کنن از اونتون در زهن در کلمات خود ایشان و بعد در ایشان که بایشون مخالفت کردن به این موضوع نیامده من به این موضوع هر نکم که خیلی بهتون روشن بشه. اول به سوال اشتباهات موضوعیه رو بذارین فرض کنید شما میگین زید ایستاده در، نیم ساعطقه ایستاده بوده. الان میخواین استصحاب بکنین. چی میگین؟ میگین نیم ساعت قبل زید ایستاده بود، الان ایستاده است. استصحاب بها انجام می‌دهین. إجراءات خیلیه میشه. خب، در اینو اینو به پیش میاد که زید قبل از اینکه ایستاده باشه یا نشسته بود یا خوابیده بوده. قبل از اینکه ایستاده باشه، میدونین 2 ساعت قبل زید خوابیده بعد ایستاد تا نیم ساعت قبل ایستاده بود. نیم ساعت. الان شما استصاب بقا قیام میکنیم یه نیم سال قبل میستده بود به سالها میستده هست سوال اینه چرا استصاب بقا نمی ممیمونیم خوابی دوم خب دو ساعت قبل خابیده بود قبل از این قیام خواب بود دیگه یا نشسته بود بعد قیام کرد خب چرا حالا که شفت دارید استصاب بقا خوابیدن یا بقا جلو سنه میکنیم ام ها میگنشون از بین رفتو، اون حالت قبلی از باب نزیرم یعنی بیارینه. از از بین رفت اون حالت خواب یا حالت جلوس، از از بین رف شد حالت قیام دیگه باقت با از بین رفتن اون حالت چه اون حالت است؟ جلوس میتونم بکیم و استفاده خوابیده. درست شد؟ شما فقط چی میکنید، استصحاب قیام میکنید. شبیه این هم توی شواب حکمی میان شواب حکمی چطور تو؟ اون خانمی که انقطاع دم شده شما استصحاب بقاء حرمت می‌کنی خب در اینجا این بحث مطرح میشه شارح مقدس شما بعد از اینکه به اصطلاح بعد از اینکه شما به اصطلاح یعنی پیدا کردید که ورسا دم منقطع شده اینجا شک میکنید آیا حرمت هست یا نه استصحاب میکنین بقا حرمت استاد میگه نه یه استصحاب دیگه هم میاد اون استصحاب این است که اصولا قبل از اینکه شارع حکمی قرار بده برای زن قبل از اینکه حکم قرار داده بشه برای زن جایز بود ورتیش با حکم شارع خارج شد ما اگر شک بکنیم خوب ده ما اگر شک بکنیم که آیا حلال است یا حلال نیست میتونیم استثاب عدم جعل بکنیم یعنی دائما در کل مواردش رو باز حکمیه چون یه جعل شد حرمت جعل شد وجود حالا شک میکنیم میتوانیم استصحاب بقا همون حکم بکنیم میتوانیم استثاب عدم جعل بکنیم اشخال استاد اینجاست یعنی تمام نروح نقطه استاد اینجاست این شباهات حکمیه با موضوعی فرق میکنه و روح اکثالی که به ایشان هم اشکال کردن هم اینجاست گرم اون استصحاب و عدم جل رفت و سر نظر این نظرم اینقدر واضح شد تو خیلی از موارد خیلی مبهمه در کلمات استاد باشه اگه خیلی بحث کردن با ایشان حتی زمان ایشان بد کردن نروشتن و ایشان بازم مصرف بود که استثاب عدم جل موجودی پس ایشان در حقیقت ببینید دو تا مطلب یک قبل از اینکه این خانم خون ببینه خب یه جوز رو اون رو نمیگه ایشان استثاب اون جواز رو نمیگه اون مثل قیام قبول میمونه اون با آمدن حیز اون جوازی که قبل از حیز بود اون برداشته شد جوازی لیکن ایشون میگه یه ای چیز دیگه میمونه. اون استثاب عدم جل نه از این برد برد. چون خون نبود بلا عدم چرا ایشون میگه عدم جل همیشه در تمام احکام هست یعنی به عبارت اون هر حکمی که شما میبینی تا شک بکنی همیشه عدم جل باشه هست حکم آمده،, آمده،, آمده. آمده روی عنوان ببینید روی عنوان زنی که با راجبه زنی که خون نداره شک میکنین که الان آمده یا نآمده اصلا موضوع استثنا بدن عذری نیست نه آمده؟ نه, خیلی نه ایشون استثنا بدن عذری جاری میتوره اما موضوع استثنا بدن در بحث موضوعی جاری میشه استثنا بدن عذری که این زن مثلا تو دنیا اومده قریشی هست نه ایشون میگه البته ایشون استثنا بدن عذری جاری میکنه که نه بالله ها یه حکم شاملش میشه صورت شکل هم شما بده روشن, روشن ایشان دعاشون اینه هر وقت شما در حکم شک بکنید یه استثاب عدم جرم همیشه با شکل ولی دا شما در هر که در حکم شک بکنید چون استثاب عدم میاد. باید از اون استثاب جواب بدیم لذایشون میتونم مانعی نداره شما استصاب بکنم بقیه با اشکال نداره لیکن چون این زمان مشکوکه بعد از این قطع ادم مشکوکه شعره جعلی کردی یا نکردی استصاب عدم جعلم جلی میشه استصاب عدم تشریفی این سر به مطلبی شد که این لحاظ حالت صادقه رو ما گفتیم پس مرحوم استاد خلافنده اخباری این اخباری میگم در شبات رو بکنی اصلا لحاظ حالات سابقه نکرده. اخباری میگن در احکام کلیه شباط حکمیه اصلا شاره لحاظ حالت سابقه رو نکرده لا تنقذیر یقینه به شکل نگفته استاد میفرمان لحاظ حالت سابقه رو کرده لیکن یک حالت سابقه دیگم هم هست که دائما در شباط حکمیه جاری میشه و اون عدم جلده آیا یعنی که با ایشان مخالفن، شاگرد ایشان و غیره؟ حرفشون اینه که بگیم اون استصحاب عدم جنگ جاری نمیشه؟ مثلا ات... ها چون جنگ نه مقدم نمیشه، جاری نمیشه. چه جنگ به چه جور همون دیگه خب میگه به استثاب میگی چون شارع استثابه عدم جل حالا یک بحث داره که من را قضیه حمیقیت و خارجیه کار ندارم من وارد تفاصیل بحث نو خورم اون نکته دراسته بحث اینه که استثابه عدم جل با آمدن قانون شرعی دیگه جایی نمیشه تا اون شد استثاب عدم جل هیچ تأثیر نداره یا به تعدیر بعضی ها رسفشون فرم کنه استصحاب علنجل به نه قضیه حییت و نه نظریه خارجیه این دو تا همین هم یه فهم در یک رسولی که با هم معارضه بکنم حالا این هم یک تقریب دیگر مطلب نمیخوام وارد بحث بشن پس بنابراین خوب دقت بکنید بحث سر این است که در واقعه استصحاب لحاظ حالت سابقه شده بحث در اینجا که آیا در شواهد حکمیه که شیخ الان محل بحث میدونه اصلا لحاظ حالت ثابته شده یا نشده عوام رو اخباری ها میگن روایت اسلصحاب داریم، تعهد به داریم، داری؟ تمامش در شواهد حکمیه است. موضوعی است. در شواهد حکمیه لحاظ حالت سابقه اصلا نشده. روشن است. اون چه که داریم در شواهد و البته به واقع هم همینطوره. ما در باب استثحاب آلان مثلا این که بعد شیخ می روشتن غالبا میگه احادیث شماره بزاری کردن حدود بین دوازده تا 15 حدیث که به تبع شیخ و غیر شیخ در باب استثحاب آلان اوبردن شما استثحاب نگاه بفرموید مجموع احادیثش ما بین دوازده تا 15 حدیثه چون حالا بزرش مکنون زیاده و بزرش ممکنه تکرار باشه کل این احادیثی که در استثاب هست دلالت بکنه یا نکنه سرد داشته باشه نداشته باشه تماما در جواد موضوعی هم بله کان علایقین فرصابه بوشک ولی هم در علایقینه ولی هم. ممکنه مثلا این یک مقداری اطلاق داشته باشه و ازلا یک دانه روایت واحده که درش سوال سآل رو حکمیه باشه و جواب امام باشه نداریم موزاتن از کردن ما در فق مسائلی داریم که در قرن اول و دوم محرق شده و نکته فندیش استثاب بوده همین وقتی امرعه به سوال این قطع. این مطرح شده هیچ روایتیم از رسول الله در اینجا نقل نکردن اون حتی یک فرنه یا یک تحرنه که در قرآن ذکر شده مراد به قرینه محیز مراد نقاع از خونه چون کردم مسئله قسل حید ملابیت که هرم قسل نیست. اصلا قسل حید در قرآن ذکر نشده. اصلا قسل در مجموعه آیات و روایات در حکم سلات حائز آمده. خوب دقیقه کنید. حائز هم اصلا در قرآن نیامده. در هیچ آیه قرآن سلات یا سوم حائز نیامده. در قرآن فقط حکم وقتی حائز آمده. یا که عن محید قول هو ادم فعتذر النساء فلحب محید حتی ایت خونه یا تحرمه فعدات تحرمه فعتوهن من حیث و عناره الله اصلا آیه باب حیث تقدر راجع به وقتیه به نماز و روزه و مخصد در مساجد و این احکام دیگه اصلا کلا نیست قسلم نیامده معلوم نیست آیا آیه باشه یا حالا ممکن از پاه شدن از خون باشه یا لاغل کستن موضع باشه قسل مصطلح در روایت رسول الله آمده فعضا اقبل از الهیزه فده اصلاب فعضا تحت هرکی فعضا تهرکی فخت تسلی و صلی این تو روایت آمده و توی نماز آمده دقیق میزن اصولاً در آیات مبارکه ولو در اینجا یا طهر یا یخور نه ذی شده برداشتن دو برخوام بگیم شاید میگم بحث فقط یخور نه چه ادعاست هر نه داره بعد اصلا نمینهی سرار لكن کل این مضمون تحت به آیه به حکم غسل و ناظر به قص و اینها نیز در خود قرآن عنوان اقتصاد نیست بله در قرآن در جنوب همین عنوان تطهور هست و ان کنتم جنبا فتحل همین عنوان تفهر هست اما عنوان قصدن در قرآن هست ولا جنوبن الا آبری سبیر حتی تقفت دو پس در باب جنوب یک دفع صحبت تفهره یک دفع صحبت اختصاله در باب هیچ فقط تفهره اختصال نیست مثل کلمه اختصال در حد دهائز نیست و در روایاتی که از رسول الله هست در سلات حائز و در وقتی نیست در روایاتی که از رسول الله صلی آمده در صلات حائزه کجا آمده کجا؟ اون روایت که ما نقل کردیم که اگر چیزی به داخل طورتی تاوری کن کجاست؟ اگر اکبرت شده از ورت بره که نماز نخونه توره سنت پیغمبر تو قرآن این جرا روشن و لذا از همون اول بحث شد که بعد از این قطعه دن قصد وقتی جایز یا نه این رو مبنی کردن بر این نکته که استثاب جاری میشه جایز نیست استثاب جایز نیست. نیست یعنی در تجوه احل سنت که احل سنت این نکته بقید وجود داره که آیا استثاب جاری بشه یا استثاب جایز نشد محصول روایات ما به اتفاق بدون استثاب بفتن جایزه برن اگر کسی این رواهات رو در جبر فقیه اون زمان محنه بکنه نه الان الان آهای ها ما تعبد گرفت ولی داخت آقاهای ما هیچ کدون این رواهات که بحث استثاب در شما در حکیه نه بخش از این رواهات مبارک معلوم میشه که اصولا اصولا استثاب در شما در حکیه میشه استثاب با جبر فقیه نه خود محنه باید الان بیان در این اینجور می فهمن تحفظ داریم مثلا اونه که مشهور قائل جمع استاد در شما توفیه هستن به استرستان استرستاد و بعدی شایده ایشان به استرستان اخباری ها مشهور متحفظیم دارن قائل جمع استاد در شما توفیه هستن میگن در این مورد دهیل خاص داریم که لاید مجود رو زد الا مختصر قائل یه رو مولد لیکن منظرمان این درین خاص میدید در کل استرستاد در شما توفیه جاری میشه و با, با ملاحظه جمع فرقی در کل خلاصی به بحث این است که آیان اخواری رو میگن شارع خالت سابقه رو لحاظ نکرده و مرموم شیط و دیگران میگن لحاظ کرده و تکیب از فرزاده مرموم استاد میفهمن لحاظ کرده لیکن از اصعاب عدم جعلن لحاظ کرده عدم جعلن لحاظ کرده لذا به نظر اینشان استثاب به تار و اصابتون ولی که آمه ها ادعای این صرافه در حدر بزنن اون چی که ما به ذهنمون میرسه این مطلبی رو که مرحوم اصلاف فرمونن خب اون شروعی استثاثال این راهی کردن اشاره کردن قابل نده کردن که اون چی که ما به میرسه رسه اجمالا عرض کنن تفصیلش اینشالله در مجال خودش اولا این بسیله که ما مطرح کردیم که استثاثال در اون نقطه اعتبالش و لحاظش با خیاس از یک بابه. و این نیست روایات نفیقیات و همین روایاتی که در اینجا هست استثاب رو هم شامل بشه ای یک بحثی در محل خود بحث دیگری که آرومت درکت کردن اینه که ما با رو بررسی بکنیم اینا مطفیق رو میکنن که اگر استثاب به بنای و قغلا جاری شد میشه هماره به تعبض جاری شد میشه همست یعنی هم فرض برای این گذاشتن که در بنای اغلا استحاب دوزه هماراتی ما با توضیحاتیم که بر از خواهی کرده در خلال این چند روز هم روشن شد معتقد هستیم که استحاب به بنای اغلا خود در همون بنای اغلا هم اصله اماره میگیم خب دقت بکنیم در همون بنای اغلا فرض ما باید همجاز در همون بنای اغلا اصله یعنی اگر به به و اقلالی مراجعه بشه درست تبقیه حالت سابقه عمل میکنن صحیحه لکن این به خاطر اون نقطه فمنیست که حالا فرصید در تعاویر فرصفه قوه خیال صورتی درست میکنه یا به اصطلاح ما شما خواستیم وارد اصطلاحات خاص نشون شد نظاره میکنه به اصطلاح ما این ادراع نفسه نوع ادراک شفر این طور نیست که این ادراک استمراد ادراک استمرادی بروسه ادراک حدوثی ببینن این دو نوع به ادراکی و ارز کرده یکی از نقاط مهم در فرد بین سیر اغلاهیه و افکام عقل همینجاست افکام عقل طبیعتش است که باید موضوع به جمعی خصوصیاتش احراز بشه تا عقل حکم میکنه ولی نمی کنه طبیعتش اینجوری مثلا میگه زر برای تعدیم خوبه زر بچه حالا مثلا دیروز که این بچه رو میزنیم اثر داشت. این بود احتمال میگه اثر نداده دیگه این امروز خوبه عقل حکم نمی کن چی این چیزی عقل نداره؟ ولی ازا شیخ هم استثاب رو در افتان عقلیت جایی نکده حقا با شیخ فقط دینایی که بعد از شیخ آمده گفتن در بکن شرعیه ببینید تا به محسوس ملازمه از گفتن هرجاری می کردن در بخنه. چون هر طبیعتش خوب بود چون تعذید بود امروز هم استفاد بکنیم بقا خوبی از چون هرجاری چیزی به نام استمرار نداره عقل در رو در بقا تمام حالا میاد نگاه کن نقطه تعذید اگر تعذید و خوب تعذید تا شک بکنه میگه نه نمیتونم ضرب یک نوع ایلام و عذیتی بیگرانه پی نفسیهی ظلمه ظلم قدیریه مگه این عنوان قبل ظلم پیدا بکنه دیگه ظلم نباشه احسان باشه مثل تربیر گفتنیش تو نفسیه فرمی؟ پس در احکام احلیه نمیتونه اردو استثار این نفسیه شماییست که من گفتن چرا نمیتونه؟ چون احکام عالیه تابع واقعه و ما واقع رو با از اف... هر احراز نمی کنیم این که به خیال ما متخیله ماشین جلوش می کنیم. بله. می دونیم. چرا فلسفه جدیدی ندارم ببینید که شدن از از اثبات میشه خب اصلا من, من, من ایودش... نیست چون این یه تکی که یه من عرض کردم ها تمام که امروز سال رو یاد نمیارم تمام عرض که اینا دیروز تعجیل بود امروز هم باید احراز تعجیل بکنه دیگه حضرت اما در امور قضاییه در امور غلای میشه من بیده بیده. اما امور اغلاقیه. چون همون احکام اعلیس برای فساد رو برای اداره جامعه اجازه میدن. اینجا این در این نکته نشون میده این بهترین چون اعلیم تو واقعی هست. آب اوقالا قابل جدیت است میگم بعد از شک تو بعد از زنده. به این زن عمل باشه. چرا چون وقتی به اغلا هم گفته این صورت ممکنه باقی عوض شده باشه به زن نگیان به باقی قبل شره این رسیه قبلیم این رسیه قبلیم این رسیه اغلا همین رو گفته ها و اینا گرفته. اگر عرض باشه باید تحبه باشه ما مخوایم بگیم اغلا هم رو در امور اغلایی اغلایی نه امور شرحی هست نه در امور اغلایی هم احد امور اغلایی اماریت نداره چرا؟ خواهر... شما؟ چون اغلای میدونن ممکنه واقع اول بشه اما اغلا برای اداره جامعه و این که لازم نیاد گایی این چیزها را قبول میکنن اما عقل قبول نمیکنه که این بود مزیدونم. از این کنان اینجا افتیار دست شرعن شارعه اجازه ببین اجازه ببین شارعه امضا کنه به بفر... ید الان فهمه رو بکنه اگر شارع تصرف نکرد امزام ما, ما به ید الوغلا الان به ید الوغلا به همون به ماهو برست انجل الوغلا ملونی همون دست بره همه الان ارز کردم آهایان در ذهنشون اینه که در فهم او اماره در فهم می شدیم. الان نه من اینه که در قایل رو غالام همراهیم. من نه یادت اماره اما بابا اجازه دادید چرا؟ حالا اجازه دادید من ای بابا توزیه شعرم بذار. اجمن شعرم ببینید شما ببیند الان در فهم اقلایی با اینجا حالت صابقه رو قبول میکنم من بر مثال میزنم یک کسی الان بیاد بگه مثلا من نیم ساعت قبل حرم بودم مثلا رفتم زیارت یک کسی بیاد من نیم ساعت قبل رفتم در حرم بسته بود نجا ایستا در حرم بسته بود تو آمده. شما اینجا در فهم اقلای ب ان دو کلام چی میبینید خب ته آرز باز بود رفتم حرم بسته بود ببین دو تا خبر متعارض تا آمد شما تا آرزون اما اگر شما خودتون یک ساعت قبل حرم بودید آمدون از شما به پرستن حرم بازید باز. یک دفعه ها آمد نیم ساعت قبل حرم بودن بسته بود شما بین کلام این با اتصاب نفسی خودتون تا آرز بینید این چیه؟ اینو چی رو تصویر چرا بین دو تا خبر تا می بینید؟ بین اتصابتون با خبر تا آرز این تحبود تحبود میدین؟ نه زمینی سواته مخایفه نمی کنی چرا چون میگن من یک صورت سابق داشتم یک تا قبل بودم این آمده بگیم این صادقه در رو هرم بسته بود ببینیم این رو زم میگونه حریق به واقع میگونه افتر و احزت افتر و احزت افتر و احزت افتر و احزت افتر رفعیت میکنیم از می افترساب خودمون کلا رفعیت اگه به بعد هست درکی که تعارض باشه، مثلا تعارض نمیبینید. چرا بین دو تا اخبار تعارض میبینید؟ بین انطباق خودمون با اخبار تعارض نمیبینید. این من نکتهش این میبینم. این میگه چندو و هست که در یک جا ادعا در یک جا انطباقه. تعارض میگه. چرا بابا تو این یک ساعتش رندتون. تو اینو میشه اشتباهش میبینیم. اینم آقا میگین فاز میشدن باشه. تا مثلا چه چه سر. سر چه تاوری می‌بینیم. چه تو که باشم. یه این مثال رو من در بحث اختصاص متعرض شدیم. وقتی رو آطار نگاه می‌کنین خوب دقت بکنین. چرا؟ چون در مثل خبر ثقه تشر از واقع به انتبا واقع میگه نمیشه دو تا واقع متعاره. نمیشین این سال فرم. هم باز باشن بست اما وقتی بس استثاغ خودش رو با خبر مقایسته میکنه رفیت میکنه تا عارض نمیدینه بیه درسته من یه سال فرم بودم و میم شاید برد بزر حقا قول یه تا من حرف هم اینه وقتی اقلال این بخورد میکنن یعنی در استقاض و اقلال این که در استثاغ ادراک صورته نه ادراک صورت در خبر ادراک صورته در یکی صورت انتباهی در یکی صورت ابداعیه و نظام اون صورت ابداعی به مجرد انتباه ازش رفعیت میشه اصلا وجود ای ای نیست داره... نه میشه نه ادراف زریف نیست اصلا وقییت میکنیم حالا حالت خودتونه چون این مثال نشیدونی سالا وی این سالا هم که به وجدان به به تحضیل نداره رفتی به نداره اینا به ذهنیتشون رسیده که بالاتر هرگز یعنی اینه به شک ارتقا میشه ادراک اختیاری میشه هر ما که اصلا فهم اوغلاینه درک اوغلاونه میگه بیشتر من واژه مثلا درکی کسی روز سبحان دو سو هم واژه اصلا یک فکر دیشن که فکر نمیکنه دیشب که اعوذ سبحان و اما یه که یکی یه تصادف جنازه اینقدر ماشینش اون چرا شون دو صورت انتباعی هست. یک سمت صورت هست. هردوشون انتباعی هست. اما صورت اقدامی رو با انتباعی ثارو نمی بینم. ارزیال از اقدامش افجار... میکنه. دیگه اقدام نمیکنه. وقتی انتبا آمد دیگه اقدام نمیکنه. اقدام تا جایی میکنه که انتبا هر روشی. انتبا دیگه اف... نمیکنه. این مثال خودش و بر لوازم دیگرش کاملا <مازم> پس حرف ما خلاصه اشکیمه یه استثاب لحاظ حالت صادقه شده حق باشه اینا میگن اگر گفتیم لحاظ شده پس میشه تدودی میشه شرقی من مخوام بگن میشه لحاظ بشه اما میشه اغلاهی نه حقی لاتنخود امزا امشه ها لاتنخود از اگر نازه برو باشه امضا میشه اگر از این چین مشکل داره که برزاستو چه این دیگر ما میگن بسیار برو ش لازنبوز این مشکلی دیگه داره که اگر من ثابتش در استثابه اون مشکل اون ابزاری میشه روشن شد اختلاف ما آیان خیال کردن اگر لحاظ گفتیم باید بگیم تعبود اون از یک مطلب لحاظ هست بعد اما شهر لحاظ هست دو اگر لحاظ گفتیم باید حتما بشه تعبودی به شرقی نه ممکنه قلعایی بشه و شعره همین رو علا ما سهمه علا سهمه دو سه اون نقصه اساسی، این نحبله ها آیا در فقامی هم میان احقاله ها میان عدله انتراک داره ما اعتقاد داره اینکه خود سیره و بغلایی داره فقط در موضوع در یه اعتبارات کانونی نمیاد. این افجادی این ادراک افجادی در گرتبارات قامل میگن استاد میفرماید میاد اما معارض با یک دیگه از استاد فرمید چند معارض رو هر اینه مطلبی که استاد فرمیدن درکشون صدیه یعنی چیه یعنی جایی نمیشه تعدیلشون گیرداره این که ایشون بگه با این همون نقطه فهم و نه تا آرز اصولاً اینها جمع رو چون جل را قیامش به تنظیل به تطوره اگر ما استثاب ادعاق نفسه ادعاق نفس برای تنظیل یا تطوره قانونی کافی نیست تعلیل ما اینه آنه خوی از این راه واضح شدن حالا به تطوری بنده ادعاق نفس برای تعلیل قانون خوب نیست چرا؟ چون در قوانین همیشه حسابه در جل نه این نقطهش این نیست اون افتا تردم جلی که درسته یعنی به عبارت خوب هر قانون قوامش به جل تا جل نباشه، اعتبار نیسته بذاره چون قانون امر واقعی نیست امر فیزیکی نیست قوامش به جل استثاب هم قوامش به ابدال صور زمینی ما ابدال صور زمینی ما برای اثبات جهل ما نه کافی این کلاته اون کافی نه اون برمنده که نمیتونه چون در موقع استغرارم خودش باید آقای از این تفکیل به کرده. آراب پس ما با در نتیجه یکی در تعلیم مختلفی نه نه نه نه نه ده ده از خیلی گفتن این صاحبه ولی خیلی کلا و کار بردن بحث اینی که در روایت هم داره نفس و نعراتی صد محققی هم همینه در روایت در سنت در فیاض آمده یعنی شما اگر فیاض کردی این ذهنیت شما ابداع صورت شما این اثبات سنت رسول الله میگه چون ما عرض کردیم فیاض و استثاث هر دو ادراک ابداعی هستند و سرشان عرض کردیم چرا در این ابداع شد در فیاض ابداعی بخاطر این شد که هم کردیم بر موشیریت در استثاب هم و در این شد که تعلیمی گرفتی نه تحریبی. این دو تطرف مال شما شما با ادرافات و خودتون نمیشون قانون قرامش به مغننه به ادرافات ادرافی شما به ادرافات ادرافی شما حل نمیشون روز الله محمد این صحیح <تصفيق> در تقابول است ان در بحث اسس چون این مسئله اینطور اصلا نیست که وقتی و صندوق ما معو دعوا من بعد سالگی همش بود ما دلیل راحت